Donc c'est le jour راف <تصفيق> یه سبکه از دل مردمه باز چرا محکومه بگو چرا محکومه از دل مردمه از دل مردمه باز چرا محکومه بگو چرا محکومه باز چرا محکومه آه پوازه هنر به بهمندون مو افروی پیرن گلار مثل جک از کول یو؟ یه کپ کج با رو دوزی ارتشی به شلواری گرم کن کتونی ورزشی یا از اینام نیستن که دل میدم بیهوده سیگارم بیفته خمشم کلوینم بیرونه خب کشش نتسبه برعکس زالو فاقشم بلنده دقیق تارونوی که زالو خب منی زندگی رو دوست دارم مردمم با سعی کنم با ما دوست باشم جوری نگاه میکنه انگاری من هم واسه مهم نیست با رکابی باشگاه هم <تصفيق> بابا چی میگی تو تو همو سر قرار بکش لپ جیگیلی تو البته میدم حق که بعضی وقتو بگی دیدم بد, بد شده با این همه رپرنما که میخونن از ویدیو کوکو کسیرم بست که اینا رپر نیستن یه مش عشق شعرت هم که میشن وصلت میگه این را پیرش کرده در که گنده زیرش کرده آه زور داره یه مشیک شاکی هن. اینا رپر نیستن جوجه هیپ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 راب, راب یه سبکی خاص ادله مار دومه پاتچر محکومه بگو پاتچر محکومه ادله مار دومه ادله مار دومه پاتچر محکومه بگو پاتچر محکومه مه. تو این داوودم چند جور عده شدام تو سایکرام تو یه مهریه مثبت باشه باش. هر چی پول اعجاب بود کردمش خراب مدرم از اولش از او بلیک شد و به پدرم میگوییم برای یه روز بکردنش تنها ببالمان موه کم سین راست تغییراتو میگذاز این قلم شکرش کاری میکنه که زیرش کلم همه ها رقص عربی برن و جمله ها بس پر بشن و وضعیت ها سختتر از این بشن و شخه ها دافه ها اوپرا راه ها پرانسس ها یا نوتلا خوره ها پروسواره یا بچه پاینه مودلینگه تو زعفرانیه این سب سب که همه هست تو ترکلیست ها دست همه هر چیو محدود کنین سمتش همه میرن پس سعی کن جب ندی که رپ کنای ما همه گیرن رپ یه سب که خواست عدل مردمه پا چرا محکومه بگو چرا محکومه عدل مردمه عدل مردمه پا چرا محکومه بگو چرا محکومه